اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی نبی و عاله الطاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر عرض میکنی. و سال نو و خدمتتون مجدد تبریک کرد میکنیم اینشالله سال سلامتی و موفقیت باشه و انشالله که از هر بلایی به و در سلامت کامل و عنایت الهی باشید اما بحث ما ما در رابطه با انشاء امر رو برای شما به طور کامل گفتیم معنای حقیقی و معنای مجازی اون رو معانیش رو بعد وارد نحی شدیم نهی رو هم که امر است تعریف کردیم و به طور کامل بیان کردیم حالا چون نموزجش رو من نگه داشتم که توی این جلسه نموزج نهی رو بخوانم که یه تکراری نسبت به مطلب قبل باشه بعد وارد بحث استفاد گفتیم که نهی نبارت است از طلب المتکلم من المخاطب ترک الفعل ترک الفعل یا الكف عن الف فرقی متکلم از مخاطب میخواد که کاری رو ترک کنه یا از کاری دست بکشه. اما چه الاستهلا و لزوم با وشه استهلا و لزوم و در واقع همون تعریف عمر فقط ما یه کلبه یه ترک رو اینجا اضافه کردیم اونجا میگهتیم طلب المتکلم من المخاطب الفعل چه الاستهلا و لزوم اینجا میگیم ترکلی فعله علاوه از فلسطلاق و لزوم. گفتیم اگه این شرایط باشه میشه نهی حقیقی متکلم از مخاطب میخواد ترک کند متکلم از مخاطب میخواد ترک کنه کار رو متکلم از مخاطب میخواد که کار رو ترک بکنه کاری رو که هست این کار انجام نده علاوه شلسته لا وللزون امروز که استثنائن من نمیدونم که هنوز که به ما اعلام نکردن که کلاس ساعت دو باشه یعنی طبق روال قبلیمون ساعت یک بود اگر اعلام کردند که کلاس ها ساعت دو هستش از جلسه بعدمون که انشالله ساعت دو ما کلاس رو میکنند. میکنن ولی فعلا که اعلام نکردند و الانم که این دوستانمون هستن دیگه پس بنابر امروز رو استثناا ساعت یک بعد می که حالا ببینیم که آیا واقعا دو اعلام میکنن یا نه خب پس بنابراین پس بنابراین ما تعریف نحیمون عبارت شد از طلب المتکلم من المخاطب ترک علاوه بر الاستلا و لسو گفتیم یه سیغه اصلی داره یک سیغه اصلی موسیقه اصلی عبارت است از فعل مزاره با لایناهیه مثل لا یقتب بعضو کن بعضا غیبت نکنه بعضی از شما بعض دیگر لا یقتب خدا گفته از بنده خودش خواسته کاری رو خواسته که غیبت کردن انجام ندن علاوه چه دسته و لزوم هم هست خدا بلند مرتبه است لزوم هم داره که اگر این کار بکنی گوش آدم رو می مثل لای یقتب بعض و بعض فعل مزاره با لای ناهی بعد من به شما عرض کردم که یک سیغه دیگری هم دارد که اون سیغه سیغه است که تو کتاب نگفته تو کتاب نگفته ولی ما خدمت شما گفتیم گفتیم فعل مزاره با لای نافیه فعل مزاره با لای نافیه این تأکیدش بیشتره مثل این که بگه لا تعبدون الا الله لا تعبدون الا الله ما یعنی لا تعبدوا الا الله اما قدرتش بیشتره لا تعبدون الا الله یعنی عبادت نمیکنید مگر خدا رو این قدرتش بیشتر از اینه که شما بگید لا تعبدوا الا الله چرا چون انگار که شما این کار رو انجام خواهید داد و این داره ازش خبر میده ظاهرش خبری است گفتم فرق است بین اینکه یکی بگی بیا یا به یکی بگی میای اینو توی امر گفتیم تو نهش هم این همینه به یکی میگیم نگوی این حرفو نگو یه بار هم میگیم شما این حرفو نمیگی این شما این حرفو نمیگویی درست این خیلی قدرتش بیشتر از اینه من بگم لا تقول هازا این میشه نه اما یه موقع میگم لا تقول هازا تو اینو نمیگی این تأکیدش بیشتره پس دو تا داره یکی اصلی است فعل مزاره با لای نهیه که کتابتونم گفته یکی هم فرعی است فعل مزاره با لای نافیه فعل مزاره با لا نافیه فعل مزاره با لای نافیه خب اون معانی مجازی نهی رو هم که با قرینه میفهمیم معانی مجازی شد مثل اینکه اگر غیر ضبالعقول باشه مثل امر میشه برا تمنی ها مثلا بگه یا عیتها السماء لا تمتری ای آسمان نبار خب یعنی چی یعنی کاش و آسمان نبار حالا اگر از پایین به بالا باشه میشه دعا مثل رب بنا لا تا آخز نا این او اختن دعا تو پایین به بالا مساوی به مساوی باشه میشه التماس خواهش اینا چیزایی که امر و نه با هم مشترک و ما این مباحث مباحث تکتایی بود کاملا برای شما بیان کرد حالا بیایم توی مباحثی که از نهی خوندیم توی نموزج اینها رو دنبال کنیم نموزجش خودش یک متون نظمونه است و خیلی هم نظر که شما دلقدر دوش داشته باشید و... حالا نگاه کنی یک قالت حالا ولا تفسدو توفظ رو بعد اصلاح لا تفسدو فی فساد نکنید در این زمین بعد اصلاحها بعد از اینکه اون رو درستش کردید یعنی بعد از اینکه اصلاح کردید و ایمان آوردید کار رو درست کردید درست شد صفحه 188 نموزج درس نهی و لا توفصدو فیل بعد اصلاح اینو کی میگه؟ خدا میگه. به کی میگه؟ به بندگان خودش. حالا اگر فساد بکنن چه میکنه خدا؟ گوش اینها رو خواهد گرفت. پس همه یه شرایط نهی حقیقی رو داره. لا تفسدو معنای حقیقی نهی داره. طلب المتکلم خدا. من المخاطب بندگان ترک الفل یعنی ترک افساد علاوه بچه لسته و لزوم به بچه استه و لزوم دو قال عبول علا آقای عبول علای مرلی اینطور میگه لا تحلفن نه. این لا لا نهیه چون لا نهیه است که با نون تحکیده سقیله و خفیفه میاد لا تحلفن نه علا صدقن ولا کذیبی میگه قسم نخور بر راست و دروغ یعنی چه حرف درسته چه حرف نادرسته راست میگی دروغ میگی قسم نخور صدقم اول آورده درست شد؟ یعنی حتی اگر صادق هم هستی. قسم رو ترک کن لا تحلیفن نه على صدق ولا کذب یعنی لا تحلیفن نه على صدق ولا تحلیفن نه على کذب چرا؟ این فا یعنی فای تعلیل فای تفریه نتیجه سببیته یعنی زیرا فما یفیدو که اللل معسم لحلفو یعنی اللل معسم به خاطر شعر و قافیه که فاو بوده مقدم شده والله اینطوری بوده فما یفید ک الحلف الا المعصمه ما المعصم مفعول دومی یفیدوس کاف مفعول اولشه و الحلف فاعله فما یفید ک الا المعصمه الحلف یعنی چی یعنی الحلفو یعنی حلفو قسم خوردند این قسم خوردنت به تو سودی نمیده الا المعصم مگر گناه کردن قسم پایین آوردن نام خداست برای هر عمل جزئی قسم نخود زیرا این قسم خوردن بگید بجرس اینکه برای تو گناه محسوب بشه هیچی نیست فایده نداره برای تو الا گناه فما که و و الا المعصم الهله حالا لا تهلفن نهی این چیه اینجا این نصحه ارشاده چون ابوالعلا داره مورد نصیحت میکنه ارشاد میکنه به اینکه مبادا قسم بخوری حالا چه راش چه دروغ چرا چون قسم خوردن بجز اینکه نام خدا رو پایین آوردن چیزی دیگری نیست و این گناه بر تو محسوب میشه خب نصیحت رو هر چون لزوم توش نیست دیگه بسته و لزوم توش نیست سه و قالت حالا لا یسخر قوم من قوم اصا ان یکون و منهم این لا یسخر من قومن چون بعدش هم میگه که نساء من نسائن این, این قوم اینجا میشه مردان میشه خلاصه جماعتی از مردان جماعت دیگری از مردان رو مسخره نکنه لا یسخر قوم من قوم چرا این عصاع یکونو تعلیله استیناف بیانیه زیرا امید است یعنی چه بسا ان یکونو خیرا منه چه بسا اونایی که دارن مسخره میشن خیرا منه بهتر از اونایی باشن که مسخره میکنن چه بسا اونهایی که دارن مسخره میکنند پوینت تر باشن از اونهایی که دارن مسخره میشن اونها بهتر باشند. شما داری یکی رو مسخره میکنی میگه مسخره نکن چه بسسا اون از تو بالاتره تو نمیفهم لا ازخر منقومن ازایه کوون و این زمین انیکونو یکونو برمیگرده به قوم دوم که مسخره میشن منقوم و زمین منهم بر میگرده به قوم اول که مسخره میکنند اگر ما دو تا زنر داشته باشیم دو تا مجر و هم شکل باشند مثل اینجا که همش جمع مذکره اینجا از طریق فهمش اینه که دور در دور نزدیک در نزدیک میکنم یکونو برمیگرده به قوم، قوم دوم که مسخره میشه، من هم برمیگرده به قوم اول که مسخره میکنه. لای از خرقاومن من قوم از آن یکون خیلی ببینید اگر صدای من قطع و وصل میشه برای بعضی ها روی سیستم من هیچ م... مشکلی نیست من دارم همه رو میبینم حالا بعضی ها ممکنه اینترنت خودشون بعضی ها رو من میبینم که سیستمش خودشون بقول قول خودمون سبزه بعضی ها ممکنه که قرمز باشه اون ربطی به بحث ما نداره الان اینجا کامل کامل آنتمپوره موقعیتش ردیفه همه چیش هم سر جای خودشه پس صبر کنید تا اینکه سیستم شما درست بشه خب. پس بنابر این لایس خر قوم من قومن ان و یکونو خیرا منهم تو کتاب نوشته لایسخر خر برای توبیخ برای این صحیح نیست بلکه اینجا نهی حقیقیه نهی حقیقیه خدا گفته که هیچ کسی حق نداره کسی دیگر رو مسخره کنه دلیلش همینه که اون کسی که داره مسخره میشه شاید اون پیش خدا ارزشش بالاتر از تویی باشه که داری مسخره میکنی نهی حقیقیه. و اگه کسی مؤمنی مؤمن دیگری رو مسخره کنه خداوند تعالی اون رو مؤاخذه خواهد کرد پس بنابر این نهی هر اما ایشون چرا گفته توبیخ چرا گفته توبیخ ببینید این آیه وقتی که نازل شده یه شعن نزولی هم داشته شهن نزولی یعنی سبب نزول یه اتفاقی می آیات نازل می شد. آیه یه کسی یه کسی که نقل کردن از زوجه های کسی دیگری رو مسخره کرد کسی کسی رو مسخره کرد این آیه نازل شد خب این آیه که نازل شد اون شخص رو نسبت به کاری که انجام داده بود چیکار کرد بگید توبیخ شد. یعنی اون توبیخ شد اما درسته که این آیه شعن نزولش اون شخص بوده و اون شخص توبیخ شده درست شد یه توبیخی برای اون بوده فرض کنید بنده خدا ای نکرده کسی رو مسخره کردم یا آیه نازل شد خب بله من با سرو میندازم پایین میگم عجب غلطی کردیم یه کاری کردیم آیه نازل شد و گفتش اما آیه مال اون شخص نیست آیه مال اون شخص نیست یعنی در واقع قرآن مطلبش عامه ها اما سبب نزولش یه نفری بوده این باعث نمیشه ما بگیم که به قول خودمون این آیه مال فلانیه پس برمان توبیخه بله اگر اسمشو برده بود و گفته بود فلان کس این کارو نکن آه مو گفتیم توبیخ شمک کرد اما این آیه مثل آیه دیگری که میگه لایقتب بعضو کن بعض قیبت نکنه بعضی از شما بعض دیگر نهیه نهیه. این اینم هم مثل همونه نهی است. نهی حقیقی است و خداوند نهی میکنه که هیچ کسی کس دیگری رو سخره نکنه، مسخره نکنه، استهزا نکنه، زیرا شاید اون پیش خدا ارزشش بیشتر داشته اما اگر شما اومدید و به قول خودم شأن نزول در نظر گرفتید، بله شأن نزول به اون کسی که یه مسخره کردنی انجام داده بوده و این آیه نازل شده نسبت به او توبیخ هم هست اون در اون زمان بوده نسبت به او اما نامی همونه بوده مطلب کلیه آیه کلیست و نهیش هم نهی است و این توبیخ صحیح نیست چهار رو نگاه کنید خدای تا حالا می فرماید لا تعتذرون روز قیامت ملائکه الهی برمیگردند گردن میگن لا تعتذرو عضر و بهانه نیارید خب قد کفارتون بعد ایمان کن این دلیلش این قرین است زیرا شما این استیناف برگمید. زیرا شما کافر شدید بعد از اینکه ایمان از شما ایمان ل... ایمانو چشیدید شدید مومن شدید بعد از اینکه که شدید پس شما دیگه هیچ عضر و ای ندارید عضر و نیادید این لا تعتذرو اونا هنوز هنوز عضر و بحانه نیورد بودن آیه رو نگاه کنید ملایکی اومدن جلاشون وایستادن؟ کیا رو اونایی که مرتد شده بودن جز مومنین بودن بعد رفته بودن کافر شدن یه این خب این مرتدین رو بهشون میگن شما که ایمان رو چشیدید شما که لذت فهم قرآن رو فهمیدید بعد کافر شدید شما دیگه حرفی نزنید شما دیگه جای عذر و بهانه آوردن ندارید این لا تعتذرو اینجا برای تیعیثه برای معیوز کردن برای معیوز کردن یه موقع داره عذر میاره میگی لا تعتذرو نهیش میکنی یه موقع نه. اصلا گفتم مثل این میمونه. من سوالات امتحانی رو پخش میکنم. هنوزش که سوال نگاه هم نکرده که ببینه تو از من سوال کنه. برمیگردم میگم هیچ کسی سوال نکنه. سوال نکنید. چون تمام سوالات واضح است. اینکه میگم سوال نکنید. چون تمام سوالات واضح است. این سوال نکنید بلا خاطر اینه که شما رو معیوز کنم از سوال کردن بعد از این دیگه دستتون بلند نکنید و سوال کنید بعدشم دلیل آوردم که چون همه سوالات واضح است. پس بنابراین این لا تعتذرو به قرینه قد کفرتون بعد ایمان کن برای تیعیز معیوز کردن مخاطب روی این دوتا یه چند لحظه روی این دوتا و وقت قرینش نگاه کنید یک دقیقه فرصت بدم بهتون که نگاه کنید روی اینها تا من یه وسطش یه یک دقیقه بهتون مفرصت فکر کردم بدم تا اون یکی رو بخونیم مثال بعد رو ببینید قال البهتوری یخاطب المعتمد علی الله بهتوری گفته و مورد خطاب قرار داده خلیفه معتمد علی الله رو پس از پایین به بالاست این شاعر این خلیفه است داره چنین میگه معتمد علی الله رو این طور گفته خوبه الخلیفت العباسي العباسی و الخامسه عشره بوی ابل خلافت سند معتین و ستن و خمسین و اشتهر ابل الواسع و توفی سند معتین و تسن و میگه لا تخلو تخلو بوده وان به جزمی ثابت شده نه لا تخلو میشن عیشن یکر و ابدا و نوروزن علیک معاد عرب های عادتی دارن کلماتی رو که عربی نباشه میاد تو زبونشون یه جوری تغییرش میدن تعریبش میکنن انگار مهر عربی بهش میزند نظر ناوروز رو هم که فارسی هستش به عنوان روز نو رو آغاز این روز این توی اصطلاحشون نیروز عنوان میکنن اینجا همون لفظ خودش رو نهار کرده خب چون این ها فارس و ایرانی ها در دربارشون خیلی بودند و فرهنگ ایرانی قلبه داشته در بینشون در نوروزی چنین میگه ما تو نوروز میگه ما ست سال به این سالها اینم هم همین رو گفته میگه لا تخلومن عیشند توهی مباشی از زندگی که یک یخ... فر ابدا سرور و یکرو یعنی یهجمو هجوم میکنه شادمانی و سرور اون زندگی پشت سرهم یعنی زندگی که سرورش هی پشت سر هم بیاد و شادمانیش تکرار بشه تو از این توهی نباشی یعنی همیشه زندگی سراسر شادمانه نصیب تو باشد و روزن این یکور رسول رو رو صفت عیشه. و نوروزن نه توی یعنی لا تقلوم نوروزه همیشه نوروز داشته باشی خالی نباشی از نوروز نوروزی که علیکم معاد یعنی علیکم متعلق به معاد معاد صفت نوروزه نوروزی که اعاده شود اعاده کرده شود بازگشت به قول خودمون یابد بر تو ای نوروز تکرار بشه ست سال بین سال و نوروزن معادن علیکه یعنی علیکه معاد در واقع مقدم شده پس گفته زندگی سراسر شادمانه رو تو همیشه شالله داشته باشی و نوروزی که هی تکرار بشه هم بر تو باشه تو خالی از این دوتا نباشی خب این چی میتونه باشه غیر از دو هیچ پایین به بالا داره میگه که تو همیشه چنین باشه که نوروزت اعاده بشه و زندگی سراسر شادمانت تکرار بشه و هیچ موقع از این دوتا توهی نباشیم خب پس بنابراین این نشاندهنده اینه که داره دعا بکنه خب دیگه بریم سر بعدی و قال القذی این شاعر که مال همین نوار قذده هستش ایشون میگه ولا توسقلا به اون دو نفری که شاعرها شعر معمولا تو شعر میگن این دوتا همراه شاعره یادتونه امرال قیسم داشت قفا که نبکه من زکرا حبیب و منزلی آه روز دفا نبکه من ذکرا حبیبن و من زلی که به کی داشت میگفت و اون دو دوستی که خیالی بودن دوست شد اون دو دوستی که همراهش هستن یا تو همین بحث نهی از متنبی دیدیم که میگفت فلا و ما اقولا ممایدو به سیف و دوله بگیدیم چیزایی که من گفتم، آه فلا لقاهو ما عقولون فا اینهو شجاعون متایز کرلهو دهنو یشتری مباده اینایی که من گفتم و برید بهش بگیده آدم... چون اون آدم شجاعیه یادش بندازی این چیزایی رو که من گفتم و بحث جنگ و شجاعت و فیلش یاد اندوستان میکنه یه فلا تبلغاهو گفتیم نه حالا گفتیم نهی یکه از مساوی به مساوی باشه دوست به دوست باشه میشه ازتماسه میشه خواهش م? بس لا توسقلا همین میگه ولا توسقلا جیدی به منت جاهله جید یعنی گردد میگه ای دو دوست من گردن من رو سنگین نکنید گردن من رو سنگین نکنید به منت جاهل با لطف و منت آدم جاهل آدم جاهل یعنی نوکیسه آدمی که کریم نیست اهل کرم نیست جاهله به کرمه میگه مبادا لطف اینو بیارید بندازید گردن من اروحو بها مثل الحمام متوقا اروحو یعنی از اذهبو که من حرکت کنم بها با این مننت جاهل مثل الحمام مثل کبوتر متوقعا در حالی که توق داره. کبوترها بعضی دوره گردنشون یه توقی دارد. حالت سبز رنگ رنگ دیگه هست. هر کی نگاه بکنه به این کبوتر اول همون توقشو ببینید. میگه این توق تو گردن کبوتره. میگه منت جاهلم بندازید مثل توق به گردن من. من هر کجا برم هر کی نگاه کنه اول اون لطف جاهل رو میبینه گردن منو به لطف جاهل متوق نکنید توق نکنید خب اروح به ها منت جاهلی که من راه برم با اون مثل اله همام در حالی که مثل کبوترم متوقن اونم کبوتری که توق دارد کملا التماس بود و ما دیدیم بریم سر بیت بعدی و قول آخر ببینید میگه لا تطلب المجد شاعر داره به یه مخاطب خودش میگه مخاطبی که داشته اون حجبش میکرده داشته اون رو با قول خودمون زمین میزده میگه لا تطلب المجد دنبال مجد و عظمت نرو مجد و کرم و عظمت و هیچ چیزا رو لا تطلب برش کن بی خیال مجد لا تطلب المجد چرا مجد المجد سلمهو بود زیرا سلم یعنی نردبان زیرا مجد و عظمت نردبان او خیلی سخته دوچه خیلی خیلی سخته و اش مستریحن ناعمال بالی مستریحن ناعمالبان حال برای فایل گه بگیر به تمشتر جاد بیشین در حالی که راحت هستی و بیخیاد ناعمالبان ناعمالبان بالهود فکرش راحت با فکر راحت خیلی همچین آرون بگی بشین بیکاری؟ تو بخوای را بیفتی دنبال مجلو حظمت مجلو حظمت وزار کنا کار تو نیست تحقیر داره میکنه میهه مثل چیمونه؟ مثل که یه نفر بیار شاگرد مثلا فرض که از نظر من تنبلی باشه دنبال درسنا بیارم سوال میکنه کارشناسی هر شرقه مثلا چیجوری امتحام میدش بیارم ول کنبا با کارشناسی هر شلقه. کنکورش رو دل کن کارشناسی میناسی خیلی کنکورش رو خوندنش سخته همین لیسانس رو بگیرگیر ب راحت باش بهتان به این چیزا مشغول نکن اون تحقیر می یعنی تو رو چی این حرف دنبال این کارا لا تطلب المجد یعنی مجد و عظمت و این چیزا به تو چه موب؟ این غلط ها به تو نییمده این؟ مجد و خیلی نردبانه بلنده کار تو نیست بتونی بری بالا بی همینطور چه طور که هستی باش به این چیزا مشغول نکن تحقیل میشه اش مستریحا نائمل بال نائمل بال اضافه اضافه لفظیه یعنی نائمن باله چون حال باید نکره باشه مثل مستریحن اضافه اضافه لفسی. اون اشش هم که فعل امره برای تحقیره بی خیال باش بکر تو به این چیزا و قالت الخنسا خنسا شاعره عرب است هم در جاهلیت بوده و هم بعد از اسلام دوزن مخضرم قالت الخنسا ترسی اخاها سخر. یه داداشی داشته به اسم سخر داشته اونو مرسیه میکرد اصلا مشهور هم هست خنسا به مرسیه هایی که برای داداشش گفته واقعا داداش ناتنیش هم بوده ولی خیلی براش سوزناک مرسیه گفته که در جاهلیت کشت شده بوده و این مرسیه ها مشخور نگاه کنید پایین میگه انداروز اول و یوم فسنت شن و حوام این الفرس که اینو من توضیح ده. اما سخ رو چی میگه میگه هو از شحم و الکریم و اقل خنسا ها آدمی باشه هماد کریم برادر خانسا بوده از طرف پدر دادیا. فقط قتل قبل از اسلام به قلیل یه چند سال قبل از اسلام از دنیا رفته کشته شد. فرسد خو اختوه به قصائد خواهرش اونو با یه قصایدی مرسیه کرده. قرآن به قصاید با یه قصاید خیلی شیوا خیلی نورانی من عجله ها از سیت از که خمسا به خاطر این بسیده قصائه ناله از سیت از سیت یعنی شهرت زائع یعنی منتشر آوازه آوازه فراگیری زائع یعنی پخش آوازه فراگیری به دست آورده به خاطر این قصائد چی خنسا؟, خنسا من عجل این وسائل از از زای بین شعرهای جاهلیت و المخضرمی آوازه خیلی بلندی پیدا کرده بین شعرهای جاهلی و مخضرمی به خاطر همین قصایدی که در مرسیه دادشه بود. ببینیم که شی گفته میگه اعینیه عین عین این ع یعنی ای حرف نداست ای دو چشم من عین عین بوده اضافه شده بیا ای دو تا چشم من عین جودا جود کنید بخشش کنید به امر ولا تجمدا و بخل به خرج ندید یعنی ای دو تا چشم من گریه کنید و بخل در گریه نداشته باشید بعد میگه علا تبکیان لیل سخت ندا این علا تبکیانه عرضه اینم برای نمو آدل خیل امره دیگه علا تبکیانه یعنی اپکیان ولی گفتیم عرض طلبه به نرمیه علا تبکیان لیل سخت ندا شما برای سخر کرم آه، او سخر که معدن کرم بود شما برای اون نمیخواید گریه کنید یعنی گریه کنید دیگه شاهد سر جودا و لا تجمداست که هر دو نهیه و عمره. هر دوش خطاب به غیر ذوالعقول چشماش و خطاب به غیر ذوالعقول حالا چه طلب امری باشه چه طلب نهیی باشه میشه تمنی اعینه ی جودا ولا تجمدا علا تبکیان لسخر ندار آیا شما نمیخواید برای سخر ندا برای کسی که معدن است گریه کنیم لا تجمودا یعنی لا تبخلا دوم خوب این معنا که خب این هم عبارت شد از تمنی قال خالد بن سفان که هم از این چیزی خوندیم که اهل بسره بود و پولدار بود و ها میگه قال خالد بن سفانه خالد بن سفان گفته لا تطلبو الحاجات فی غیر ها و لا من غیر اهلها لا تطلبو لا تطلبو دو تا فعل نحیه میگه لا تطلبو الهاجات الهاجات یعنی حاجات کن با قول آقایون الفلام از مضافه الله یعنی درخواست هایتان را طلب نکنید درخواست هایتون را فی غیر هینه ها در غیر وقتش خواست بله یکی اینکه شما طلب و هاجات الان وقتش هست ازش بخواید در وقت خودش اگر در غیر وقت از احل خودش. شمترین شمترین از باید از اهل خود شریم شما بالاترین کس طلبواجتونده اما در وقتش آه. نیست اصلاً خوبی و چیزی گیرتون آه. پس هم از اهلش بخواهید و آه. هم در تمام مناهل حاجات حاجت خودتون طلب نکنید در غیر زمان لا تطلبوا الا حاجات یعنی حاجاته کن فی غیر ها و تطلبوها من غیر اهلها ها خب این چیه لا تطلبو لا تطلبو ارشاد کرده دیگه ما رو میخواستن نصیحت کنه که اگه خواسته ای داری سعی کن خواستت رو در زمان مناسبش و همچنین بگیر از اهل خودش طلب کنی در زمان نامناسب و از اهلی که اهل نیست از غیر اهل طلب نکنیم ما این مبحث نهی رو به طور کامل تمام کردیم و نهی رو برای شما خوندیم حالا از الان به بعد بحث استفهام شروع میشه که نوع این شاید امر و نهی دوتا رو ما خوندیم و تکنال زیادی هم کردیم استفهام مدحسش تو گوش کنید هم به خودمون بلاغیه یه مقداریش هم نحویه که من هر دو رو بیان میکنم رو شما هم به خاطر بسپرید هم یاد داشتتون رو داشته باشید کتاب رو نگاه کنید که بحث استفهام بحث بسیار زیبا و لازمیه که عقب نیاردیم استفهام چی هست اولا استفهام یه تعریفی داره اصلا خود کلمه استفهام مستر باب استفعال استف یا استفخمه استفخامه از فهمه یعنی طلب فهم کن خب استفهام چیه؟ معناش اینه طلب المتکلم من المخاطب العلم عل الفهم متکلم از مخاطب طلب میکنم که یه چیزی رو بفهم دوست من طلب میکنم که یه چیزی بفهم اسم شما رو میپرسم آدرس جایی رو میپرسم خوب و بد بودن چیزی رو میپرسم فهم نسبت به چیزی طلب بشه میشه استفهام اما استفهام حقیقی این نیست بلکه استفخام حقیقینه اون چیزی که شما ازش داری سوال میکنی فهم نسبت به چیزی میشه استفهام اما به شرطی که اون چیز معلوم نباشه برا من واقعا بخوام بفهمم حقیقتا بخوام بفهمم ولی من الان میدونم یه مطلبی رو از شما سوال میکنم از شما سوال میکنم خب من اگر از شما سوال کردم این سوال من برای فهم من نیست که بخوام یه چیزی رو بفهمم و نمیدونم بلکه بعد اینکه شما رو امتحان کنم این استفهام هست اما استفهام مجازی به غرینه اینکه من استاد هستم شما شاگرد هستی از, از چیزی رو سوال کردم برای فهم نبوده فهم حقیقی پس استفهام حقیقی عبارت است از طلب متکلم از مخاطب فهم چیزی رو به شرط اینکه اون چیز برای متکلم که سوال کرده معلوم نباشه از قبل اگه معلوم باشه میشه استفهام مجازی اون باید با قول خودمون بگردیم با قرینه دنبال معانی مجازش حالا نگاه کنید شما توی قواعد درس تو قواعد درس این تعریفو گفته الاستفهام طلب به بشیء یا طلب به بشیء طلب علم به چیزی طلب فهم به چیزی یعنی طلب کنه متکلم از مخاطب فهم چیزی رو علم به چیزی اما به شرط اینکه این لم یکون صفت شیء به چیزی که لم یکون من قبلو یعنی من قبل الاستفهام قبل از اینکه سوال کنه قبل از اینکه استفهام کنه براش معلوم نباشه اگه معلوم باشه استفهامش دیگه استفهام حقیقی نیست درست شو استفهامش دیگه استفهام حریقی نیست پس الاستفهام طلب العلم به طلب المتکلم من المخاطب عل علم به شیئن فهم به شیئن لم یکن معلوما من قبل الاستفهام که معلوم نیست قبل خب استفام رو فهمید هر کجا من سوال کنم و واقعا سوالم برای فهم باشه نسبت به چیزی و بخوام بفهمم هم میشه استفامگیر. درست دارم چه استفاام خرید؟ اما اگر برای بقول خودمون فهم من نباشه؟ برای فهم من نباشه. اون میشه معانی می باید بگردیم ببینیم؟ معناش چیه با قرینه میفهمیم که معناش چیست درست شد معناش چیست معانی مجازیش هم میتونید خودتون بعدهای یکی دوتا تا با قرینه متوجه میشید من اگر یکی سی رو دیدم واقعا نمیشناختم. میشید شما کی هستید تو کی هستید سوال اون بگه من بشناسمش اون هم میگه من محمد پسر فلانی هست استفا میشه ایر یه مخواه یک یه کسی کاری میکنه من تو دیگه کی هست خب یه معنای میشناسمش یه معنای مجازی براش مجازی قای و این معنای مجازی گاهی وقت ممکنه با اول خودمون برای تقدیرش باشه تو دیگه کی هست بابا یه موقع تو دیگه کی هستی تعجبه؟ تحجبه معانی مجازی میشه شما معانی مجازی میشه قاییم رسید و خواهیم کن که با قرینه فهمیده وله تو کی هستی آه؟ در همه شکلش یکیش گفته بشه تو کی هستی اما یه موقع حقیقیه یه موقع معانیه مجازی الاستفخان و تلب و لعلم بشه انم یکون معلوم من قبل ببینید استفهام با عدواتی صورت میگیره عدوات عدوات استفهام این عدوات استفهام دو جورند یک سریشون حرفند یک سریشون اسمند غیر حرف پس عدوات استفخام حرف است و اسم حرف است و غیر حرف خب حروف استفخام نسبت به اسماع استفخام اصلند. اول اونا رو بررسی میکنیم پس عدوات استفهام چند دسته شد؟ دو دسته حرف اسم حرف که اصل نسبت به اسم این حرف خودش دو تاست دو تا حرف استفهام داره یکی حمزه حمزه استفهام و دومی حل دومی حل پس حرف استفهام چند تاست؟ دو تا یکی حمزه و دیگری حل اینا حرف استفخام بعد از اینها ها اسم های داریم مثل من چه کسی ما چه چیزی چیفت چگونه متا چه وقت و همینطور با این اسم های در واقع مبنی شدن به خاطر این که دربر گرفتن معنای حرف استفخام یعنی همزر اینا تو به قول خودمون رتبه دل برن. پس ادوات استفخام چند دسته شد؟ دو دسته حرف اسم. حرف چند تاست حمزه و حل خب تا اینجا یاد برفتیم. حمزه و حل گوش کنید حمزه با حل یه فرقایی داره برای همینم است هم که حمزه اصل عدوات استفانه تو هر گروهی یه دونه رئیس هست مثلا اصل عدوات شرط این شرطی است. اصل عدوات ندا یاست رئیسشون اصل افعال ناقصه کانه است میگن کانه و ها توی عدوات استفهام هم رئیسشون اصلشون همزه است و همزه و اخواتش خو اینو فهمید هر کجا اونی که رئیسه ام البابه یه خصوصیاتی داره مخصوص خودش یه امتیازاتی داره همزه هم نسبت به حل امتیازاتی داره امتیازاتی داره درست شو؟ که امتیازاتشو خواهیم گفت پس همزه و حل هر دو حرف استفامند همزه اصل است حتی نسبت به خل. برای که همزه اصل دو استفخام با همزه صورت میگیره با همزه دو و صورت میگیره یک استفهام تصوری دو استفهام تصدیقی استفهام تصوری استفهام تصدیقی اینا هر دو با همزه صورت میگیره استفهام تصوری استفهام از جزء جمله است جوز جمله است. یه جزی از جمله. حالا جزء جمله میتونه مصند باشه. میتونه مصندانی لک باشه. میتونه مفعولان به باشه. مفعولان له باشه. ظرف باشه. که از عیزای جمله. سوال اگر از جزء جمله باشه میشه استفهان و استفهام بگو تصبر مثل اینکه که من به شما میگم افل مسجد سلیت امفل بیت افل مسجد سلیت امفل بیت افل بیت مسجد سلیت امفل بیت یعنی چی؟ یعنی آیا شما توی مسجد نماز خوندید یا تو خونه؟ اینجا من سوال از مکان جمله دارم میکنم شما تو مسجد نماز خوندید یا نماز خوندن تو کار ندارم، به اون کار ندارم. اون انجام دادی، اون برام مفروضه میگم این تو خونه بوده یا توی مسجد؟ یا مثل این میگم از زیدن رعیت ام ام را از زیدن رعیت ام ام را زید رو دیدی یا ام رو دیدی؟ سوال از مفهولون ممکن ممکنه سوال از مصند اله باشه مثل که میگم از زیدن جا ام ام زیدون جاء ام عمرو زید اومده یا عمرو حتی حتتو ممکنه سوال از مسند باشه میگم تکلم زید ام سکته اتکلم زید ام سکته زید حرف زد یا ساکت شد از مصند دارم سؤال میکنم از فعل جمله هتکلم زیدون امسکته اگر با این مثال هایی که من نگاه گفتم دقت کنید ساختار استفهام تصوری با همزه به دست میاد باید تونسته باشید ساختارش چجوریه؟ همزه استفهام بعد اون چیزی که مورد سوال واقع میشه بعد عم میاد بعد لنگه دوم یعنی اون طرف دوم سوال تصور دیگه از جز سوال چون جزء مورد سوال این بوده 아이د که به این عمی که این وسط هم هست میگن عم معادله عم متصله حرف عطفه ام؟ درش رو، افل بیت سالایی ام امفل مسجد، از زیدان رعایت ام امرت، از زیدان جا ام امرت، اتکل ل ام امسکت، همش ساختارش به این شکل، تصوریه. تصور سوال از مفرد جمله است جزء جمعه است و جایی که سوال از مفرد یا جزء جمله میشه جوابش هم با تعینه. میاد بگید جوابش با تعینه. با نعم و لا نیست، با تعین. یعنی وقتی من گفتم از زیدون جاء ام امرون شما باید بگید زیدن یا بگید همان. چون جواب بدید. لا و نعم اینجا معنا این اینو میگن استفهام تصوری سوال از مفرد نگاه کنید توی متن قواعد میگه و هو ادواتون کثیرتون برای استفهام ادوات زیادی هست منها بعضی از اونها اینه الهمزت و هل حمزه و هل یطلب بل همزت احد و امرین با همضه یکی از این دوتا چیز طلب میشه. یک. از تصور، استخام تصور و هو ادراک مفرد مفرد این یعنی جزشانده. فهم و درک مفرد رو طلب کرد. و فی حاضر الحال و در این جایی که طلب فهم مفرد شده، تعطل همزد و مطلو وتن به مسئول یعنی واقعتا قبل همزه میاد در حالی که واقع شده قبل از اد یعنی همزه قبل از مسئولن. و یز ک و لهو فلقاله فلقاله بالاش میید 9 پ درصد درصد و ذکر میشه برای او در قالب معادلی همتایی بعد ام هم این فلقالب هم یادتون باشه همه جا اینطوریه دیگه ما میپرسیم مثلا از زیدان جا ام امرون این ام امرون درست شد ام امرون همیشه میاد معادل زیدانه درست شد افل بیت سلیت ام فل مسجد میاد اما گای اوقات به قرینه هست میشه به قرینه مثلا که من و شما بحث داریم سر اینکه که زید اومده یا عمر اومده بحث بوده من حالا سوال میکنم از ایدان چه هم؟ شما میفردید یعنی از ایدان جا هم عمرون دیگه درست شد او ام عمرون به قرینه چی شده؟ هست شده یه میشه در مقابل قالب یعنی قیل قالب که با قرینه هست شد این استفهام تصوری اما استفهام تصدیقی چیه؟ استفهام تصدیقی عبارت هست استفهام از جمله سوال از جمله این از مفهوم جمله سؤال میشه اینجا پاسخش نعم و لاست یا باید تصدیق کنی بگی نعم یا رد کنی بگی لا ی تصدیق استفهام تصدیق ماشون که میگم قزیدون قائمون زیدی استاده شما میگید نعم یعنی بله یا میگید لا یعنی نه اینجا دیگه بعدش عموینهام نیست استفهام از کل جمله است یعنی از این جمله هست یا نیست حالا ممکنه که استفهام از منفی بشه استفهام از مثبت بشه و هم نمی کنه از جمله سوال شده. حالا اون جمله مثبت منفیش برقی نداره. تستیق استفهام تصدیقی عبارت است از استفهامی که از کل جمله کلام سوال میشه. پاسخش هم نعم و لست. پاسخش هم نعم و لست. نگاه کنید تصدیق رو میگه رهوه ادراک و نسبه ادراک نسبت یعنی کل جمله نسبت یعنی اسناد یعنی مفهوم جمله یعنی مضمون جمله طلب اون مضمون جمله رو میکنه که آیا اونو میخواد بفهمید مثبت یا منفیه اینجا دیگه جواب به تعیین نیست جواب با نعم و لاس اد تصدیق و خوبه ادراک و نسبه و بی حاضل حال یمتنه و ذکر و المعادل اینجا ذکر معادل معنا نداره چون معادل بخوایی ذکر بکنی در واقع توی معادل ذکر کردن شما میگی من اصل رو میدونم جز آنه میدونم اینجا داری از اصل سوال میکنی دیگه معادل آوردن معنا نداره نظر جایی که استفهام تصدیقی هستش دیگه ام بعدش نمیاد بعد از هم از میگی اقام از ایتان. آیا زید میگه نعم یا میگه لگ از تصدیق و ادراک و نسبه ادراک مضمون کلام مضمون جمله و فی الحال یمتنه و ذکر معادل ذکر معادل ممکن نیست حالا اگر یه جایی استفهام استفهام تصدیقی بود سوال از جمله بود اما یا هم, هم بعدش دیدی اون رو امو بهش میگن ام منقطه به معنای بله بلکه یه به یا نیست من بل بلکه شو پایین نگاه کن حاشیه ان جاءت ام بعد همزه تصور اگر ام بعد از همزه تصور بیاد تکون متصلا معادلتا متصل است معادله است آتفه است و این از بعد همزت تصدیق اگه بعد از همزه تصدیق یه موقع ما اهم دیدیم که امدتا نمی بینیم حالا مثلا 5 درصد امی بعدش دیدیم درست شد و این از بعد همزت تصدیق او حل یا بعد از حل اومد حل بود بعد از جمله که با حل تموم شد ها بعد از اینکه با حل تمام شد ما عم دیدیم حل یاست ولی عامل و البسیر ام. اینجایی که بعد از حل آمده قدرت منقطعتنه. این سر این امو بهش میگن ام منقطعه و تکونو به معنا بل به معنای بل. این تا اینجای مطلب خب حمزه هم برای تصور هم برای تصدیق موقعی که برای تصور بعدش ام میاد گاهی اوقات دو سه درصد ممکنه ام هست بشه با قرینه موقعی که برای تصدیق بعدش ام نمیاد و اگر هم یه موقعی پیدا بشه سر پیدا بشه اون ام ام منقطه است دیگه ام عاطفه و معادله و متصله نیست تصدیخ. فهمیدیم چیه؟ تصورم فهمید. حالا خمزه برای هر دوتا بود چون رئیس بود اصل بود اما نگاه کنید حل چی؟ میگه یطلب و به حل از حل فقط برای تصدیق میاد برای همینم هم بعدش اگر هم بیاد همش گفتیم منغت هست یطلب و به حل از تصدیق با حل فقط تصدیق اراده میشه لیس خیرون بگیم حال زیدون قائمون یا حل قام زیدون حل عطا علال انسان هینون منت دهر لم یکون شیع هم مذکورون فعال و با باید بگی نعم یا بگیم لا برای تصدیق یطلب و به حال عط تصدیق لیس خیرون دیگه غیر از این هم نیست و یمتن اومعه ها ذکر المعادل و معادل هم نمیتونه بعدش بیرد چرا؟ به دلیل اینکه معادل و جاییه که ما میگیم ما اصل و میدونیم جز او داریم سوال میکنیم اینجا داریم اصل با حل برای سوال از اصل کلام پس این امکان نداره که بعد شما امکان نداره که بعد شما ام و اگر یک زمانی ام آمد ام متصله نیست عاطفه نیست نام منقطع است به معنای بله خب، تا اینجا این مطب رو دونستیم حالا بیاید نگاه کنید به مثالها مثال‌هایی که نگاه کنید قشنگ دیگه مشخص بشه سه سری مثال زده الف گروه علف، گروه ب گروه ج الف حمزه استفهام برای تصوره همزه استفهام برای تصوره به همزه استفهام برای تصدیق جیم حل استفهامی است حل استفهامی است و قطعاًم برای تصدیق چون به غیر از تصدیق نمیاد برای حالا همزه های تصوری رو نگاه کنید میگه انت مسافر و ام اخو ما میبینیم دو نفر وایس کنار ماشین اتوبوس میخوان سوارش هم برن میبینیم یه دونه ساک دارن یه دونه بلیط دارن دو تا یه بلیط داره یه ساک داره اون آقایی که میخواد سوار کنه برمیگرده به این میگه تو مسافری یا دادشت تو میری یا دادشت میری با چون یه دونه بلیت داره میبینه مالا توه یا مالا اینه اونجا چی باید جواب بده بگه انه یا بگه اخی دیگه نعمول ها معنی نداره اون میگه مسافر بودن تون قطعیه چون بعد اینجا وایسادی ساکت هم دسته یه بلیت هم داری تو نخواهی سفر کنی یا دادشت انت المسافر و ام اخو انت المسافر خبره ان اومده بعد از همزه معادلش رفته بعد از که وج است. این استفهام تصوری از مثندن ی دور رو نگاه استفاام تصوری از مث استفاام تصوری از مثند. وقتی تو دکون میبینه یه نفر تو اون دکون وایستده وسط دکون هیش که هم نیسال ها نمیدونید اینکه پشت دخل نیست وسط دکون وایستده صاحب دکون فروشنده است یا نه اصلا خریداره اومده وایستده واسه که این دکون شما بر میگذید بهش میگذید اموشتره نه انتا به باهه شما فروشنده اید یا خریدارید اینجا خب اون که اینجا وایستده یا باید فروشنده را چه خریده اون برمیگره میگه من فروشندم یا میگه من خریدار. الان مشترین خبر مقدم انتم مبتدای ما انباعه باعه جای مشتر ببین هر کدوم که سوال ازش میشه میاد بعد از همزه یه خبر مقدم شده بعد از همزه معادلش بعد از همزه دو شما مشتری هستید یا فروشنده ای؟ ده رو نگاه کن یک کشاورزی زمینشو شخم زده بعد هم بزرشو ریخته الان ما بزر رو نمیدیم که چی ریخته خب مزیره برمیگردیم از این ولی میبینیم شخم زده کاشته حالی هنوز سبز نشد از این آقای کشاورز سوال میکنیم اش شعیرن زرعت هم قم خواه ببخشید آقا شما جو کاشتی یا گندم ہم میدونیم اینجوری جو میکارن یا گندم میکارن اینجا. الان چون نمیدونیم کدومش رو کاشته میدیم جو کاشتی یا گندم سوال از مفعولم بهه اومده مقدم شده بعد از حمزه معادلش بعد از هم شما جو کاشتی یا گندم اونم باید با نعم ولا که نمیتونه جواب بده باید بگه شعیرن یا بگه غمن گندم یا جو چهار رو نگاه کنیم؟ یه نفری اومده نفس نفس زنان وارد میشه بهش میگیم ار راه که بنج یا؟ خب این الان اومدنشو داریم میبینیم اومده نفس نفس هم میکنه میگه اقا سواره اومدی یا پیاده اومیم از حال داریم سوال میکنیم لذ راکبند حاله مقدم شده ماشین عطفه جایموست بعد از هر. شما سواره اومدی یا پیاده اون نمیتونه بگه نه حمله باید بگه یا سواره یا پیاده سوالات ها. پنج نگاه کن ای از جماعته یستری هلوم مالو ام یا اومد احد مثلا یک کشوری فرض کن مثل ترکی مردم مسلمان اما طبق قوانین اللایی که خواست خودش اداره میشه ما نمیدونیم که توی اینجا جمعه تعطیلند کارگران یا یک شمبه تابع اروپاست یا تابع کشورهای آسیایی اسلام جمعه استراحت میکنه یا یک شنبه سوال میکنیم ایا اومد جمعه ایستری هلومال تحتیلی کارگران روز جمعه است، ام یومل احد یا روز یک شنب هست خبیه روز تحتیل هم دیگه طبقه سوال کدوم هشه سوال مکنی ایومل جماعته یستری حلوم مالو ام یومل احد حالا ببین اینجا سوال از ظرفه ظرف زمان یا مثل اون که ظرف مکان بشه مثل این که من گفتم افل بیت سلیت امفل مسجد افل بیت سلیت امفل مسجد یا اصلا ممکنه مفعول لح سؤال بشه مثلا كده بگیم عتادیبن ضربت زیدن ام لعبا عتادیبن ضربت زیدن ام لعبا برای ادب کردن زید زدی یا برای بازی کردن ام بازی, بازی کنی زدی تو گوشش یا واسه ادبش کنی تعادیبن مفعول له عتادیبن ضربت زیدن ام با. همه اجزای جمله رو میشه بگید ازش سوال کنیم، اون مورد سوال میاد بعد از همزه و معادلش میره بعد از خب اینا استفهام های بگید تصوری بود حالا استفهام تصدیقش رو نگاه کنید سوال میکنید ای از زهب از ذهب یعنی این که شما میشناسید فلزه طلا ایسته او آیا زنگ میزنه آیا اکسیده میشه زنگ میزنه تلا, تلا زنگ میزنه فوال بکن بگی نم یا بگی لا دیگه خب جواب چیه جواب لاست چون تلا تنها فلزیه که زنگ نمیزنه اکسیده نمیشه نزا تلا فروش ها میگن اگر زنگ زن پس میگیریم؟ نوع ا 11 زهر آیا طلا زنگ میزنه هفت آیا سیر ال قمامو یا ابر رو آسمان ال یعنی ابر آسمان آیا این ابر آسمون داره حرکت میکنه فعال میکنه طرف میوام میکنه یا نه یا میگه بله باد میاد حرکت میکنه میگه بله حرکت میکنه یسیر یا نه میگه نه حرکت نمیکن ا یسیر الغمال آیا این ابرا حرکت میکنه هشت اتتحرک العرزو ما رو این زمین نشستیم آروم آهسته خونمونم اینجا سالهای سال چتکون نخورده ولی میگن زمین داریم میچرخه هم دور خورشید هم دور خودش سؤال کونم اتتحرک العرز آیا زمین حرکت میکنه هم با جواب بده بگه نعم یا بگه لا. مشخص سوال از اصل جمله است. اصلا دیگه بعدش عمم معنا نداره و نمیدند. روح جیم همین تصدیق با هله. میشه اینجا حلو برداری بردینجاش حمزه بذاریم. میشه اونجا هم اون حمزه ها رو تو ای استهو برداریجاش هل. میگن هل ای استهو ذهبو هیچ فرقی با هل ای استعون حل یسیر القمامو و هیچ فرقی با حیسیر و نمیکن اتا تحرک با هل تا هیچ فرقی نمیکن اینجا میتونید حل یه اقل حیوانو بگید ایا عقلو؟ هیچ فرق نمیکن هیچ فرقی نمیکن حل یه اقل و حیوانو آیا حیوان حیوان قوه عاقله داره درک میکنه یعنی میتونه سغرا و کبرا بچینه و نتیجه بگیره آیا حیوان عقل داره؟ نه فعال نه حیوان اگه کاری هم بکنه ولو خیلی باهوش هم این کار رو انجام بده که از درمان وشه برحساس است برحساس اون کدهاییه که توی وجود او گذاشته شده توسط و خداوند و ایلا مثل ما به که نتیجه گیری کنه فلان چیز رو با فلان چیز قاطی کنه فلان چیز رو سقرا قرار بده فلان چیز رو که قرار بده نتیجه بگیر درست شو هل عقل الحیوان هل یه حس آیا گیاهان حس میکنند یعنی اگر مثلا گیاهی رو شما زخم بهش بزنید زخمیش کنید درختی رو آیا او درد میگیره؟ احساس درد میکنه؟ نه چون احساس منوط به داشتن سیستم های عصبی و مغزه. که این پیام ها رو آکسون ها برسونن به مغز و احساس درد کنه و این نیست درهید درست گیاه رو خراب کردیم درست آفت زدی فساد ایجاد کردی ولی این نیستش که احساس درد هل یه هستان هل یه انمو آیا جمادات م? مثل سنگ چوب اینها شیشه آیا اینها نمار میکنن رشد میکنن قطعا چون رشد مال نبات هست و حیوان جماد رشد که معلوم معلومه جواب لاست پس هل یه اقلال حیوانو لا هل و حسن نباتو لا هل انمول جمادو ی انمول جمادو لا. حالا همین رو میتونیم با همزه هم بگیم هیچگونه موقعیت خاص خودشو نداره پس بنابراین بحث رو فهمیدیم حالا دیگه متنو تون میخونم که بتونید داشته باشید که زیاد براتون با قول خودمون سخت نباشه درست شد نگاه کنید نگاه کنید قواعد رو یک بار میخونم که درس رو تکرار کنم متن، متن، این درس رو میذارم بمونه که با درس بعدیم که میخوام بگم با هم جفتش بکنم که بحث استفهامو رو جمع کنم هم. پس شد قواعد چهسه ال استفاام و طلب علمه بهشه ان لم یکن معلواً من قبلو من قبل یعنی من قبل ل استفام. و لهو ادواتون جسیتون من ها همزد و حل. چهلو چ یوت لب وبل همزت اهد و د و همراینه از تصو و هو ادراکول مفرد عنی ادراک جز شونله. حالا اون جز مثند و علی باشه مثد باشه مفولوم به باشه حال باشه. ظرف زمان باشه مکان باشه وفی هازه الحال تحت الحمزه تو مطلوب وطن بالمسئولر حمزه بعد از مسئول اندیم میاد چیز حمله قبل از مسئول مطلوب یعنی واقعه قبل انگار گفته و فی الحال تحت الحمزه تو واقعه قبل المسئولر حمزه قبل از مسئول اند میاد و یوز کر و لحو فالغالب معادلون بعد امن و ذکر میشه برای این مسئولان انح در قالب که گفتیم 95 درصد گاهی اوقات ممکنه که با قرینه حضر در قالب معادلی میاد بعد از ام گاهی اوقات هم ممکنه اونو هم با معادل با قرینه حضر تصدیق و هوه ادراک و نسبه یعنی ادراک الجمله ادراک مضمون کلام اونا مخواد بفهمه و فی و فیهاز حال یمتن و ذکر المعادل اصلا معادل ذکر کردن درست؟ نیست نمیشه معادل ذکر چون معادل بالا اینه که من اصل کلام رو میدونم جزش نمیدونم اینجا شما دارید از اصل رو سوال مکنید ممتنع ذکر معادل حالا اگر یه جایی ما ام دیدیم چی کار کنیم میگه ما هم همه منقطع هست به معنای بله یطلب به حل اد تصدیق با حل ولی تصدیق هست فقط درست شد لئیس غیر و غیر اونم نیست از برای تصور نمیاد و یمتن و معهاز کل معادل معادل هم اصلا زکر نمیشه بعد آشیه یک داشت که برای تون خوندم این جاعت هم بعد همزت تصور تکون متصلتن آتفتن معادلتن اگر ام بعد از همزه تصور بیاد که حتما هم میاد این متصلست آتفست است و این جاعت بعد همزت الاستفا بعد همزت تصدیق اگه بعد از همزی تصدیق و موقع دیده بشه یا بعد از حل دیده بشه خب که برای تصدیقه قدرت اینجا تقدیر میشه اون عمل منقطع است هم منقطع است یعنی ما بعدش جدای از ما قبل حرف نیست و تکونو به معنا بعد میشه به معنای بعد این مبحث رو دیدید حالا انشالله یه نگاهی بهش بکنید و مباحث رو جمع جور کنید چون بحث استفام تقریبا سه تا بحثه و از مباحث و امده این کتاب، انشالله تو جلسه بعد اینو به طور خلاصه میکنم مطلو میخونم بعد مبحث دوممون رو دنبال میکنیم که بتونیم انشالله کارمونو تمام کنیم موفق و معید منصور باشید الله در پناه خداوند تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برم.